نقشه شورای ارل مردان ارل با بالاپوش‌های چرمی سرخ بلندشان که تا زانوهاشان میرسید در آن اتاق دراز سرخ برابر سرورشان ظاهر شدند سرورشان آن مرد سپیدموی موی شکوهمند که در صندلی مرسعش لمیده بود به گفته‌های سخنگوی آنان گوش فرامی داد و سخنگو چنین گفت هفت صد سال است که پیشوایان خاندان شما به نیکی بر ما فرمان می‌رانند و کردارهاشان بر زبان خونیاگران تکرار می‌شود و هنوز در ترانه‌های کوچک و پرتنین آنان زنده است و اما این نسل به سوی نیستی روان است و هیچ چیز تازه‌ای در کار نیست فرمانروا گفت چه می‌خواهید گفتند میخواهیم فرمان روایی جادویی داشته باشیم فرمان روا گفت چونین باشد پانصد سال است که مردم من در شورا سخن گفتهاند و همواره چنان خواهد شد که شورای شما میگوید چونین میخواهید پس چونین باشد و دستش را بلند کرد آنان را تبرک کرد و رفتند به بیشههای کوهن خود بازگشتند به کوبیدن نعل بر سمهای ها به پرداختن چرم به باغبانی به کار بر روی ناهمواری های زمین راههای کهن را دنبال میکردند و در جستجوی چیز تازه ای بودند و اما فرمان روای پیر بزرگترین فرزندش را به پیشگاهش فراخواند. و اندکی بعد مرد جوان در برابرش ایستاده بود در برابر همان صندلی مرسع که فرمان روا هنوز آن نشسته بود جایی که روشنایی دیرگستر از پنجرهای بلند چشمهای سال خورده ای را نشان میداد که به آینده های دوردست ماورای دوران خودش می‌نگریستند، و همان گونه که آنجا نشسته بود به پسرش فرمان داد گفت پیش برو پیش از سپری شدن روزهای من برو و بنابراین شتاب کن و از اینجا به سوی شرق برو و از دشتهایی که میشناسیم بگذر تا سرزمین پریان را ببینی و از سرحد آنان که از شفق است بگذر تا به کاخی برسی که از آن تنها در ترانه ها گفتند. مرد جوان آلوریک گفت از اینجا بسیار دور است فرمان روا پاسخ داد بله درست است مرد جوان گفت و در بازگشت دورتر است چرا که در آن دشتها فاصله ها همچون اینجا نیست. پدر گفت چونین است. فرزند گفت هنگامی که به کاخ رسیدم میخواهید چه کنم؟ و پدرش گفت با دختر شاه پریان ازدواج کن. مرد جوان به زیبایی و تاج یخی دختر شاه پریان اندیشید. و نیز به شیرینیش که افسونهای افسانهی از آن گفته بودند بر روی تپه های وحشی آنجا که توت فرنگیهای کوچک میرویدند، در هنگام گرگومیش و آغاز درخشش ستارگان ترانه بسیاری درباره او سروده میشدند، و اگر کسی خاننده را میجست، کسی را نمی یافت گاهی تنها نامش بارها و بارها به نرمی سروده میشد، نامش لیرازل بود او شاه راسته جادوان بود ایزدان سایههاشان را برای تعمید او فرستاده بودند و پریان نیز میخواستند به مراسم تعمید بروند اما از دیدن سایه های جنبان بلند و تیره ایزدان در دشت های جال نشینشان حراسیدند و در توده های شقایق صورتی پنهان ماندند و از آنجا لیرازل را دعا کردند فرمانروای پیر گفت مردم من فرمانروایی جادویی جادوی خواهند. خواستی خواهند صفیحانه است و تنها دانندگان اسرار که روی نمی نمایند می دانند چه در پس این گزینش خواهد آمد اما ما که نمی بینیم از رسم که هن پیروی می کنیم و را که مردممان در شورای خود می انجام می دهیم شاید حتی هنوز هم روحی از خرد که به بتواند نجاتشان دهد رو به آن روشنایی برو که از سرزمین پریان میتابد و این روشنایی سایه و روشنبین غروب خورشید و طلوع نخستین ستارگان را اندکی روشن میکند و این تو را تا رسیدن به سرحد و گذر از دشتهایی که میشناسیم راهنمون میشود. سپس کمربند چرمیش را گشود و شمشیر بزرگش را به پسرش داد و گفت به یقین این شمشیر که خاندان ما را از درون دورانها به امروز رسانیده است همواره تو را در سفرت حفظ خواهد کرد حتی در ماورای دشت هایی که میشناسیم. و مرد جوان شمشیر را گرفت هرچند می اندیشید هیچ چون این شمشیری نمیتواند نگاهبان او باشد نزدیک قلعه ایرل جادوگری تنها بر فراز بلندایی در نزدیکی تندر در کلبه کاهی کوچکی میزیست. جادوگر عادت داشت تابستانها در تپه پرسه بزند و آزرخش را جستجو کند. با این آزرخش که در کورعی زمینی گداخته نشده بودند، با تلسم مناسب جنگ برای رویارویی با خطرهای غیر زمینی میساخت. و این جادوگر در روزهای ویژه از بهار چهره دختر جوان زیبایی را به خود می گرفت و هنگامی که شب پرها آغاز به پریدن از گلی به گل دیگر می‌کردند، ترانه در میان گلهای بلند با ارل میگشت. و پسر فرمان روای ارل از اندک افرادی بود که او را در چنین وضعیت افسونگری دیده بود و هرچند مهر ورزیدن به او فرجامی شوم داشت هرچند اندیشه های مردان را از حقیقت منحرف میکرد اما زیبایی آن کالبد دروغین آلوریک را مسهور کرد و با نگاه جوان و ژرفش به او خیره شد اما جادوگر که با هنرهای جادوینش می توانست او را در این عشق نابود کند مرو رحم کرد و همان دم در باغ دگردیسی یافت و شکل راستین خود را چهره جادوگری مرد رو را به او نشان داد کی میداند چرا این کار را کرد؟ به خاطر چاپلوسی بود یا دلسوزی؟ اما آلوریک حتی پس از دگردیسی جادوگر هم نگاه افسون شدهش را از او بر نگرفت و در همان چند لحظه ای که نگاهش همچنان بر آن هیکل مرد خیره مانده بود در دل جادوگر که در میان درختان ختمی قدم می زد احساس گونه قدردانی را برانگیخت، چیزی که نمیتوان خرید و نمیتوان با هیچ یک از اوراد مقدس به دستش آورد این بود که به آلوریک اشاره کرد و او هم به دنبالش رفته بود و بر فراز آن تپه تندر گذر از او آموخت که در روز نیاز از فلزهای غیر زمینی میتوان شمشیری ساخت و آن را به اخصونهایی مسلح کرد که تمامی شمشیرهای زمینی را در هم بشکند و به چوز اسم اصلی به تواند بر جنگافزارهای سرزمین پریان نیز پیروز شود. مرد جوان هنگامی که شمشیر پدرش را میگرفت به جادوگر میاندیشید. هنگامی که آلوریک قلعه ایرل را ترک کرد، درد در ردر تاریکی ترسناکی فرو رفته بود. چنان تند از تپه جادوگر بالا رفت که پس از رسیدنش به نزدیکی کلبه او، هنوز روشنایی ضعیفی از روز در فراز بلندترین بلنداهای تپه مانده بود او را در حال سوزاندن استخوان‌ها در فضای باز یافت به او گفت که روز نیازش فرا رسیده است و جادوگر از او خواست آزرخش های درون باغش را از زیر خاک نرم زیر کلم بیرون بکشد آلوریک با چشمهایی دم به دم تارتر میدید و با انگشتانی که اندک, اندک با سطح شگفتنگیز آزرخش ها آشناتر میشد پیش از گستردن تاریکی هفده آزرخش یافت و در دستمالی ابریشمی عبریشمین بست و به نزد جادوگر برد. سپس آن موجودات بیگانه برای زمینیان را در کنار جادوگر بر روی سبزه ها گذاشت. آن آزرخش از فضاهای شگفتانگیز به راه افتاده بودند از راههایی که نمی توانیم در اندیشه بگنجانیم گذشته بودند با هر تندر لرزیده بودند و سرانجام به باغ جادوین جادوگر رسیده بودند و هرچند در خود جادو نداشتند اما می توانستند جادوی افسونهای جادوگر را با خود حمل کنند جادوگر استخان ران جانوری را بر زمین گذاشت و رو به سوی آن آوارگان طوفان زده کرد. آنها را در یک صف کنار آتش چید. سپس هیزمهای سوزان و خاکسترها را بر آنها ریخت و با ترکه آب نوسی خود عصای جادوگریش هیزمها و خاکسترها را برهم زد و آن هفده پسرموی مسافر اسیری زمین را به تمامی پوشاند. سپس گامی از آتش دور شد و دستهایش را گشود و با افسونی دهشتناک ناگهان آن توده را منفجر کرد. شله شگرف زبانه کشیدند و آن آتش کوچک شبانه در یک دم به انفجاری تبدیل شد که رهگذران را میهراساند از افسون او شه سبزی پدید آمدند و زبانه کشیدند. آتش گرم تر شد، جادوگر گامی دیگر به عقب برداشت و گامی دیگر و همچنان که از آتش دور میشد با صدای بلندتری افسونهایش را بر زبان میآورد. سپس چند تار موی آلوریک را بر هیزمهای سیاه بلوط که بر شدت گرما می انداخت. گرما موها را مکید و جادوگر با صدایی بلندتر به خواندن افسونهایش ادامه داد. و های سبز وحشیانه می رقصیدند. در زیر خاکسترها آن هفده آزرخش که در مسیر خود به زمین رسیده بودند بار دیگر با گرما آشنا شدند و گرمایی گرم تر از گرمای سفر دشوارشان به زمین را تجربه کردند و هنگامی که دیگر نزدیک شدن به آتش ممکن نبود و جادوگر دور از آتش افسونهایش را فریاد می زد ناگهان تمامی خاکسترها سوختند و ناگهان آن شگفتی شعلور فرو نشست و از آن شکوه تنها دایرهای برفروخته بر جای ماند دایرهای همچون برکه ای اهریمنی بر جای مانده از یک انفجار دهشتناک و در مرکز آن دایره شمشیر گداخته بر زمین بود جادوگر از دامنش شمشیر دیگری بیرون آورد و لبه های شمشیر گداخته را با آن صاف کرد سپس کنار شمشیر به زمین نشست و همچنان که خونک میشد، برای آن ترانه خواند. این ترانه همچون افسونهایی نبود که با آنها شعله ها را برافراشته بود کسی که با ویرت هایش آتش را چنان برافشانده بود که کنده های عظیم بلوت را خاکستر کرده بود اکنون نغمه ای زمزمه می کرد همچون باد تابستانی بود که در باخهای جنگلی وحشی خارج از گمان انسان می وزد. همچون نسیمی وزان بود در درههایی که روزگاری کودکان به آنها مهر می ورزیدند. و اکنون جز در رؤیاهاشان آن دره ها را از دست داده بودند ترانه از خاطره هایی می گفت که در آمد و رفتی بر لبه فراموشی گاهی نوری از لحظههایی زرین در سالهایی زیبا را باز میتاباند و سپس به نرمی از خاطر بیرون میلغزید و به سایههای فراموشی باز میگشت و در پس خود رد پاهای کوچک درخشانی بر جای میگذاشت که در ادراک تار خود آنها را حسرت میخوانیم از نیم روزهای تابستانی کوهن در فصل رویش گلهای استکانی خواند. بر فراز آن خارزار تیره بلند ترانهی سرود سرشار از سپید دمها و غروبهایی که با هنر جادوینش آنها را به همراهی تمامی جالهاشان از روزگاران دوردست و فراموش شده نگاه داشته بود و شگفت زده اندیشید که شاید هر باد سرگردان کوچکی که به همراه آن آتش از درون شفق میوزید روح یک روز گمشده ی انسان باشد روحی که به نیروی ترانه جادوگر از روزگاران دلپذیرتر فراخوانده میشوند گدازه سفید سفتر شد و به سرخی گرایید اندک, اندک از درخشش سرخی نیز کاسته شد و هرچه خونکتر میشد. باریکتر میگشت ذرههای گدازه به هم چسبیدند روزنههای کوچک بسته شدند و هوای پیرامونشان را به درون کشیدند و به همراه آن به افسونهای جادوگر چنگ زدند و آنها را برای همیشه در خود نگاه داشتند و بدین ترتیب شمشیری جادویی ساخته شد در جنگلهای انگلستان از فصل رویش ختمیها تا فصل برگ ریزان، و نیز در زمینهای بلند جنوبی که تنها گوسفندان و شبانان خاموش در آن میگردند کمتر جادویی وجود دارد که در آن شمشیر نباشد آن شمشیر عطر آویشن و نگاره یاس و سرود دست جمعی پرندگان پیش از شامگاه در بهار و شکوه ژرف و سربلند گلهای صدتومانی و نرمی و خنده جویبارها و کیلومترها کیلومتر بهار در خود داشت هنگامی که شمشیر سیاه شد به تمامی با جادو مسلح شده بود. هیچ کس نمی تواند تمام آنچه را باید درباره شمشیر گفته شود بازگو کند. چون آنان که می دانستند آز های سازنده آن برای رسیدن به زمین از چراهایی گذشتند برای پرداختن به جادو وقت ندارند و بنابراین نمی توانند بگویند شمشیر چگونه ساخته شد. و آنانی که شعر و نیاز انسان را به ترانه میشناسند یا با هر یک از پنجاه شاخه جادو آشنا هستند برای پرداختن به دانش زمانی در اختیار ندارند و نمی توانند خواستگاه اجزای آن را مشخص کنند. همین بس که شمشیر زمانی بر فراز زمین ما بود و اینک در اینجا در میان سنگهای دنیای خاکی ما قرار داشت. همین بس که زمانی همچون آن سنگ ها بود و اکنون چیزی چون آهنگی ملایم در خود داشت و بگذاریم آنان که میتوانند همه چیز را بگویند. و سپس جادوگر تیغ سیاه را از دسته زخیم و گردش گرفت و پیش آورد. آنگاه آن که ترانه وهمالودی برای شمشیر میخواند با سنگ سبزگون غریبی هر دولبی آن را تیز کرد. آلوریک در سکوت او را می نگریست. در شگفت زدگیش گذر زمان را نمیفهمید شاید تنها دمی گذشت. شاید تا دور شدن ستارگان در مسیرشان طول کشید. اما ناگهان کار تمام شد. جادوگر شمشیر را بر روی دو دستش گرفت و ایستاد. آن را معدبانه به سوی آلوریک دراز کرد. آلوریک شمشیر را گرفت. جادوگر برگشت و نگاهی در چشمهایش بود که گویی میخواست چمشیر را نزد خود نگاه دارد یا شاید آلوریک را آلوریک رو به او کرد تا سپاسش را بر او فرو ببارد اما او رفته بود بر در آن کلبه سیاه کوبید بارها در آن خارزار خلوت فریاد زد جادوگر جادوگر و کودکان در مزرعه‌های های دوردست آوایش را شنیدند و حراسیدند سپس به خانه بازگشت و همین برایش بهترین کار بود سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی